بسم الله الرحمن الرحیم کلاس استاد وائزی صاف لیکن دست شما درد نکنے م wiilĩنم سلامت وشك دست شما درد نکنے حالا حالا می‌خوام ببینم Thank you. باشه همون هم اگه مشکلی نه بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین وصلا الله علی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد و آله الطاهرین و الله علی سلام محمد و آله الطاهرین سیما ربیت الله و الاربین و لانو دوام را بحث رو به اینجا رسوندیم که خب حالا روش شناسی حل مسئله فرسی باید به چه نهبی باشه از چه مراهب و روشهایی باید استفاده کن ارس کردیم پیشنهاد ما هفت مرحله است. مرحله از مسئله شناسی شروع میشه مسئله ما یک موضوع داره یک محمول داره یا مقدم و تالی فرق نمی کنی. که هر کدوم از این مقدم و تالی ها خودشون از موضوع و محمول تشکیل شده برای اینکه ما مسئله رو بشناسیم اینها رو از هم قد تفکیل کنیم یعنی یک سری مواقع مربوط به شناخت به موضوع هست یک سری مسائل مربوط به شناخت محموله هر چندین های شباهت های با هم دارن یک سری شناخت ها مربوط به شناخت نسبت بین موضوع و محموله اینایی که پایین ببینید تصویر دارید عزیزان بره. مثلا توجه به پیشفرزهای مسئله پیشفرز مسئله برای شناخت نسبت موضوع محموله نه فقط شناخت موضوع نه فقط شناخت محموله یا یافتن مسائل مشابه کشف ارتباط و تفاوت اونها تجزیه مسئله تفکیک فروکه حالا اینها رو با تفسیر بیشتری خدمت دوستان عرضی کنید اساسا هر مسئله ی ما میذارم ما باید اول بریم سراغ فهم خوب مسئله به تعبیری فهم محل نظام و برای فهم بهتر مسئله اول موضوع رو باید بررسی کنید بعد محمول رو بعد نسبت بین موضوع محمول رو یه بس پرشن خب یا موضوع هم فرمید کنه گاهی وقتا موضوع یک پدیده زهنی یا یک واقعیت خارجی پدیده زهنی مثلا فرض بفهمید شما سوالتونی دیگه آقا من تصویر چهره مقدس مزدومین علیه سلاطه و سلام رو تو ذهنم بسازم آقا این جایزه یا جایز نیست؟ مثلا جایز هست یا جایز نیست؟ میشه حکم؟ میشه محمول شما؟ این تصویری که در ذهن میسازین میشه پدیده زنی موضوع شما یک پدیده زهن یا موضوع شما یک پدیده خارجی مثل این کارایی که تو پزشکی انجام میشه یک اتفاق خارجی یک واقعیت خارجی شما باید برید اون واقعیت خارجی رو تحلیل کنید ببینید چیه تا بتونید موضوع رو بشنسید اما متدابل проблеس های فقهی که ما تو کتاب ها میبینید تو تحقیق ها میبینید سوال هایی است که از کتاب و سنت استخراج شده به دست میاد مثلا سوال از جناس خب جنا تو آیات اومده ده. تو روایات اومده که این حرامه چون تو روایت اومده این حرامه سوالش برنوشه گرفته اینها با هم فرق میکنه. روش بررسیشون هم هم مدادداری با هم متفاوته. پس ابتدا باید نوع موضوع مشخص بشه که آقا این موضوعی که ما میخواین بحث بکنیم پدیده زندگیه واقعیت خارجیز یا ریشه در منابع فکری ما داره یا ریشه در منابع دینی ما داره. نکته دیگه اینه که در یک تقسیم بندی مفاهیم رو به مفاهیم اولفی شرعی و عقلی تقسیم می کنند مثلا فرض می وقتی میگن عدم و نجس اون اون نجس هست میگن اینجا موضوع یک موضوع اولفیه ملیار تشخیص و تعریفش هم میشه شه گاهی مقتا موضوع شرعیه مثلا فرض می میگن المسافر و یا قصد یا آقا این موضوع شرعیه. مسافر مسافر غرفی مراد نیست. یک مسافر با اسطلاح خاص شرعی مراده. یا میگه از زکات و باجه کن. این زکات زکات غرفی مراد نیست. زکات یک اصطلاح خاص در شریعت. خب میار تشکیزش هم میشه شر. دیگه میار تشکیزش غرف نیست. یا میگه آقا بریم سران و ببینیم به این نیگه مسافر یا نمیگه. رفتی به نداره. یا مفهوم ما مفهوم عقلی اونی که موضوع قرار داده شده هم آقا این تحصیل بندی ها برای مسائل مستهتسه برای فرق نظام برای های مزاق اینا خیلی مهمه بهش نارد رو بشه. اشتباهی یک مفهوم شردی رو نریم سراغ خنه میار میاه نیست اشتباهی یک مفهوم مرکی رو نریم سراغ شهر. یا مفهوم عقلی مثلا شما میگید آقا از ظلم گزاره از ظلم و حرامون میشه از مستقلات عقلی دیگه گزاره عقلی مثلا از ظلم و قوی مئیار تشکیزش عقل اصلا عرف نیست آقا میگن که شما شما مانه بوچش ها بشید این عرف بهش میگه ظلم بگه ظلم مگه مئیار ما در گزاره از ظلم و قوی عرف بود که برای تشکیز موضوعی سرا عرف برید یه گزاره عقلیه مثل اجتماع نر اجتماع نهیزه این محال عقلیه موضوعش با عقله با عرف نیست نمیدونم بگیر آقا عرف اینجا میگه اجتماع نهیزه یه این نفره میخواست اجتماع نهیزه رو بگی محال نیست یه دیگه کنید اجتماع نهیزه محال نیست چرا؟ چون ما در جامعه هم پولدار داریم هم فقیر داریم یعنی اصلا نفهمید اجتماع نهیزه این تفکی که بین موضوع عرفی موضوع شرعی موضوع عقلی باید مد نظر قرار بگیره. یه سری مباحث رو برای موضوع شناسی مباحث عام تلقی کردیم. یه سری برای موضوعات مستحدثه اینها رو از هم تفکیک کردیم. تأکیدمون رو واسه موضوعات مستحدثه از این از, از این حیث که دارای اهمیت خاصی که حال امسانی که. بکنید برای مباحث عام هر موضوعی که شما براتون قرار داده میشه برای تحقیقش محیط زیست مثلا سنگ سار میمیدونم بازجویی. هر موضوعی که خواهید ازش بحث بکنید به شکل متداول یک مراحل باید درش بشه اینجا این مراحلی که ما یکی یکی برمیش کنیم ادعا نداریم که تمام. موضوعات رو باید همه این مراهب درش اعمال بشه نه ممکنه برخی از موضوعات رو با سه مرحله بشه جمعش کرد برخی از موضوعات با پنج مرحله اما ما تمام این ده مرحله رو میگیم برای که هر موضوعی بود شما بسنجید ببینید همه این مراهب میتونه درش مفید واقع بشه باید یا نمیشه باید اگه به این نترسید آقا مثلا مرحله چهار برای این موضوع مفید نیست خوب استفاده نمی کنید اشکالی نداره یعنی ادعا این نیست که تمام مراحل همیشه باید اعمال بشه ادعا اینه که بررسی کنید ببینید این مرحله میتونه به فهم بهتر موضوع شما کمک بکنه یاد. مرحله اول این آقا محمولا مسئله که به ما ارانه میدن با لفظ به ما ارانه میدن مثلا ا معنای رو طرف تو زین خودش داره اما میخواد مسئله رو برای من تعریف کنه با لفظ استفاده میکنه اگر از لفظ استفاده میکنه قدم اولینه آقا شما معنای لغبی این لفظ رو بررسی کنم دو این لفظ از کجا اومده اگر از آیات که رفته شده مثلا لحول حدیث در قرآن اومده بریم آیات رو بررسی کنید که این لفظ وقتی از اونجا آمده اون آیات این رو در چه معنی استعمال کردن روایات اگر این سؤال از روایات به دست اومده مثلا هر حرامون برید بررسی کنید بیدید آقا قناه چی بوده معناش دو روایات شترنج چی بوده معناش تو روایات سوال سؤال از شترنج از روایات گرفته شده یا اگر از عبارات متخصصین اون علمه اغورا ما اولا نشعت گرفته از آیات رو نیست. عنوان ما موضوع ما بازجویی خب، ببین سوال کنم بازجویی این چی بحث میگن تو مثلا اینه؟ یا محیط زیست منظور اون متخصصین از این اصطلاح دقیقا چیه؟ مصاغاش چی اند؟ آیا درخت هم مثلا ما محیط زیست؟ آیا حیوان هم محیط زیست میگن بهش اینها یا نمیگن؟ نکته سوم بررسی سیر تاریخی موضوعه گاهی وقتا موضوع تازه ایجاد شده مثلا فرق بفرمایی بورس در زمان جدید ایجاد شده اما یک بار هست نه یک موضوعی از قبل بوده و یک روند تطوری پیدا کرده مثلا فرق بفرمایی عنوان پولی یک زمانی مبادله کالا به کالا بوده بعد سکه های مثلا می طلا نقره فلزاد اینها تا رسیده به اسکناس تا الان که بحث ارز دیجیتال مطرحه یا بحث بعد از ارز دیجیتال مثلا اعتبارات صرف حکومتی حکومت صرف اعتبار میکنه شما اینقدر قدرت خرید مثلا دید. این تکثوری که در عنوان پول شکل گرفته مد نظر قرار بگیره این میتواند فهم بهتری از موضوع به ما بده یا مثل بلعت فهمی بعد از این که شما این سه مرحله رو تهی کردی به شکل طبیعی یک تعریفی از موضوع برای شما شکل میگیره که اون تعریف باید جامعیتش نسبت به تمام مسادی قومد مد نظر مانعیتش نسبت به تمام اون چیزهایی که نصالش نیستن بررسی بشین این دوتا از عمده در این مشکلات تعریفه دیگه یه تعریف بخواد نهب بکنند میگن آقا این جامعه افرادیه یا مانعه افرادیست شما در این مرحله باید حواسمتون باشه که آقا این توضیحی که من از این موضوع دادم این مشکل رو نداشته باشه تالیف فاسد یا مشکلات شفیبهی نداشته باشه یا اگر این مسئله برایش مثال ذکر شده برایش استدلاله هایی مطرح شده این تعریفی که من ارائه دادم از موضوع با این استدلالها سازگاری داره یا نداره؟ علما بالاخره اینجوری استدلال کردن فهمشون از موضوع چه بوده که جدن استدلالی رو مطرح کردن چنین توضیحاتی دادن مرحله بعدی برای فهم بهتر موضوع کشف لوازم و و خاصوام موضوع آقا غنا؟ لازمش طرب مخاطب و شنونده هست یا نیست تشباه به گفار آیا لازمش انگشت نما شدن هست یا نیست وقتی شما لوازم یک موضوع رو بررسی بکنید این فهم بهتری از خود موضوع شما میده توجه به صلوف مختلف گایی وقتا ما از یک مفهوم یک سنف خاصیش تو ذهنمون میاد این سنف خاص توجه ما رو جلب میکنه ذهن ما رو میبره به اون سنف و این دوچنه مقالطه میشه چرا؟ چون موضوع مختص به اون سنف نیست سنف های رو هم در بر میگیره در اصول ما میکنی. میگیم بحث میکنیم میگیم آقا عبادت هنگام خروج از زمین غصبی سوال اینه آیا عبادت هنگام خروج از زمین غصبی درسته یا نه در حالی که ببینیم تنها مثالی که براش فرض شده، تصور شده بحث نمازه و تمام استدلال و مباحث حول نماز هنگام خروج زمین قصدی مطرح شده. در حالی که بهتر از این مسئله اصولی جامعه تر نماز بشه، بحث فقط مخصوص به نماز نیست. اگر عبادت دیگه ای هم تصور شد اون رو باید مطرح کرد و اگر این گونه بسیاری از استبدال هایی که تو اون مسئله مطرح شده ربطی به عبادت دیگه نداره مثلا اومده اقا از سلات الله تو ترکو به حاله خب این استدلال، این این محسوسه به نماز نه همه عبادت فقط ما تو اون مسئله اومدیم یک مسئله جزئی نماز رو حد کردیم مسئله کلی عبادت رو حل نکنیم در حالی که مسئله وصولی باید بحث کلی مطرح کنه. یا ایزا. مسئله ما میشیدیم، فکر بکنیم اصناف مختلفی برای ایزا قابل تصوره که ممکنه احکام مختلفی داشته باشه از این که ایزای چه کسی هست، ایزا مؤمنه یا ایزای کافره حربیه یا ایزای کافره زهن. این شخص چه نسبتی با شما داره؟ همسایه هست، همسایه نیست اقوام است اقوام نیست هدف شما از ایزا چیه؟ هدف ایزا لذت تشفیه؟ یا نه؟ ایزا میکنید که مانع ایزا ای او بشوید؟ آقا اول که من گفتم ایزا اصلا این صرف که ایزا ممکن است به قرص دفع ایزا مخاطب باشه تو زنم نبود خب اگه اینجوری بد میام مثلا نتیجه بگیرم ایزا حرام است این صفر رو بهش لحاظ توجه نکرده بودم موضوع رو با تمام اصناف به شکل جامعه و کامل لحاظ نکرده بودم و این دو با اشتگاه میشه ممکنه ما بگیم آقا ایزا برای دفع ایزا مثلا دف مورد هفتم بررسی ارتباط موضوع با سایر مفاهیم اینو رو ما کلمات علمان بسیار میبینیم برای اینکه حق رو به ما بفهمونن دقیقاً چیه میان شباحت ها و تفاوت رو با حکم میگه شباحت ها و تفاوت با مرک میگن این تفاوت ها،, ها که جمع میشه فهم بهتری از موضوع برای ما مورد هشت، انابین خاص و آمه مهم فقیلی منطبق بر موضوع استقصال بشه. شما یک موضوعی دارید. مثلا فرض میخوام استعمال آلات موسیقی، نوازندگی. آیا زندگی جایزه یا جایز نیست؟ تقریبا میشه به این عنوان ما لفظ تو ربایان نداریم. تو ادله نداریم. اما باید بریم بررسی کنیم چه علاوین مهم فتحی بر این سه داده می کنیم مثلا فقط می فرماییم بر روش که استعمال آلات موسیقی مستاق قناز عنوان اتناه برسته حالا مؤمن اینجوری هست که یا محیط سیز آقا چه اناوینی برش سهبه البته این خیلی مهمه که ما باید مسلط باشیم بر عناوین فقهی بر روایات اواب مختلف فقه تا بدونیم عنوان خاص و عام منطبقه بر موضوع رو تشخیص بدیم بله. کار سادهی نیست برای این هم گفتیم آقا سالها فرفوندن نخواد سالها روایت خوندن نخواد تا این مرحله را با به درستی تیرو کنید یا مرحله بدگاهی حکم مسئله یا احکام موضوع میتواند در طبیل موضوع مؤثر رو مثلا بفرست بفرمایید شما میگن آقا الخمرو حرامون یا میگن الخمرو نجسون اینا فهمون کنید چرا؟ موضوع واحد نیست چرا موضوع واحد نیست؟ چون اگر الخمرو حرامون شما گفتید حرام حکم تکلیفی موضوعش بعد فعل باشه نه این خارجی موضوع شروع بود خمبر. اما وقتی میگید الخمرو نجس نجاست حکم وضعی حالا این خارجی حال فعل نیست پس موضوع شما تو گذاره دوباره خود این خارجی خمره حکم مسئله اگر توجه بشه فهمه بهتری باز نسبت به موضوع براما حاصل خواهد گاهی وقتا این روان قرآن افته آخر گاهی وقتا حدود و سبور موضوع شکل دلیف روشن نمیشه خیلی ما تعمیلاتش میکنیم زحمت میکشین تو دنها این کارو کردن عالمان مثلا خیلی میگن آقا آخرش ما نفهمدیم دلیفا موضوع ناشت چیه همه این مرایل هم رفتیم خب چیکار باید بکنیم حالا؟ یا آقا حالا کاری که شما باید بکنیم این اینکه تو جنا بگید آقا کدر متعیقرش کجاست اونجایی که دیگه قطعاً صفه لغوی جنا میکنه مثلا جایی که تراب باشه ترجی باشه مناسب مجالس و باشه اینجا دیگه من غض داریم جنا هست نتیجهش چیه ادله لفظی اگر در بحث جنا داریم حتما شامل این قد متعیقن میشه یه محدودی داریم مشتبه شبهه مفهومی است اینو باید دقیق مشخص بشه اگر طرف تنها باشد ترجیح تنها باشد من شک دارم میشه مثلا با شعبه مفهومیه باید تو شعبه مفهومیه جد دنبال را حلش باشی اگر دلیلی میگم از قناه حرامون به خاطر اینکه شعبه مفهومیه دارم شامل این مسادی که ابحام دارم درشون نمیشه. نمیشه چون نمیتونه چون از این دلیل رفزی برای حل این مساله کمک کنم چون نمیدونید اصلا مستار و یه سری هم یقیق داریم قناع نیست مثلا اونجایی که نه طرف باشه نه ترچی مثلا اون اونم دیگه میشه کامل از دست شده این تفکیک اگر دقیق صورت بگیره خیلی روشنه آقا ما در بسیاری از مفاهیم دوچار اپام است، اینجوری نیست که بتونیم دقیق یک مفهوم خیلی روشنه بگیم که تو تمام مسادی به دردمون بخورن نه اینجوری نیست همین آب که میگن از واضح ترین چون یه مقدار خایی توش برزید همینوز بگید آقا مثل آقا آقا موازلت یکم برزید شک میکنید هر روز بهش بیگن آقا مطمئن نه یکم دیگه برزید دیگه مطمئن میشه که آقا اما مرحله قبلش شک و شبه است تو مسادق ما شبهات اینجوری داریم و خیلی از این شبهات ناشی از شبه مفهومیهیه که داریم توی خود حالا این یه سری نکات پایانی است که حالا دوستان بعدن ملویزه بفرمند. اما در آمده موضوعات مستحدثه. یه مقال این رو مفصل توضیح بدیم. یه سری اناوینی هست برای سؤال های فردهی که در گذشته مطرح نبوده. سوال جدید، سوال قبلا تو کتاب دوی میراث فردهی ما تر نشده. اینا رو ما بشون بیدیم. مسائل مستهدست این ای که جدید تر شده موضوعات این مسائل خودش دو گونه است موضوعات مسائلی که جدید ایجاد شده جدید تورید شده دو گونه است دو باید وقتا موضوع مستهدست مورد تصور نبوده و این نسبت به اون اصلا نداشتم از این مفهوم تو ذهن کسی نبوده معادل لفظی هم نداشته. ز بورس مفهوم بورس اصلا درسته نبوده پول اعتباری مثلا ارز دیجیتال اما گاهی بچه موضوع مستعدس مفهوم نوظهوری نیست معادل لفظی داشته اما در گذشته چون امکان تحقق نداشته مسئله شم کار نشد کسی تی نمیتونسته این کار رو بکنه؟ مسئله شم تر نشده مورد نیازشون نبوده که بخانون مثلا تر کنه. مثلا نماز در کره ما همونه مفهوم جدیدی نیست ولی در گذشته ازش صحبت نشده و مسئله جدیدیست چون در گذشته سفر به ما ممکن الان که ممکن شده این سوالش هم شده آقا حالا اینا رفتن سفر به ما نمازشون چی کار بکنن اه. اگر مفهوم نوزهور نباشه این مفهوم تو قبل در قدیم بوده باشه ممکنیم یه جسد. الفاظی برای ارائه اون مفهوم رو توی عبارات پیدا بکنیم تو عدل لفظیمون پیدا بکنیم مثلا فرض بفرمایید محیط زیست اگر ما گفتیم لفظ جدیده مفهوم جدید نیست ممکنه همون مفهومی که ما از محیط زیست داریم در گذشته با یک لفظ دیگه ارائه می شده مثلا برخی هم بگن در برخی از به همون معنای محیط زیست که ما الان مثلا اگر رواید داریم موازه به ارز باشید یعنی موازه محیط زیست باشید میشه توی موضوعات مستعدسه توی این مو... موضوعات به یک ادله لفظی هم رسید، به یک عدلی هم رسید. اما ما بیشتر باید روی اون موضوعات نستهدسته کار کنیم که حتی مفهومش هم در گذشته ندوده. اینا یه مداری تری کار مش. پیشنهاد اینه. ما ابتدا اون موضوعی که میخواید در موردش صحبت کنیم به علم مرتبطش مراجعه کنید که اصلا بیانیم آقا مراد اینا چیه آقا شبیه سازی که میگن دقیقا مراد چیه به چی میگن شبیه سازی این, مف... این لفظ شبیه سازی از مفهوم ذهنی متخصصین پزشکی نیشه گرفته باید این مفهوم ذهنیشون چی بوده که از این لفظش استفاده میکنن به دقیق واقعیت خارجی حالا اون محفوم درست اما با این مفهوم اشاره به چه واقعیت خارجی میکنن اگه اون باقیت خارجی هست مثلا پخش زنده آقا ما محفومش رو میدونیم اما وقتی میریم در واقعیت خارجیش نگاه میکنیم میریم آبا اصلا پخش زنده به اون معنای دقیق دلید دقیقش یا امکان تحقق نداره یا واقع نمیشه همیشه مثلا یه ده ثانیه یه بیس ثانیه اختلافی هست از لفظ پخش زنده استفاده می کنیم. اما حواستمون باشه که واقعیتش فرق میکنه کنه واقعیتش زنده زنده هم نیست و این ممکنه تو حکم ما اثر بذاره کشف انواع و, محت... و روش های مختلفی که برای موضوع مستعدد استفاده می شون مثلا توقیه مزدید اگر ما انواع و اقسامش رو ندونیم نمیتونیم فهم درستی از موضوع مسئله داشته باشیم آقا تلقی مصنوعی گاهی وقتا مصنوعی بودنش که این است که فقط رحم اجاره مادر و پدر همین دو شخص بستن گاهی وقتا نه اصلا هیچ رفتی به این مادر نداره هیچ رفتی به این پدر نداره گاهی تا تلقیه مصنوعی بین چند مرد و چند زن هستیم مطفیق شکلیه خب این رو باید دقیق تعیین بکنیم ممکنه بعضی از این مواردش جایز باشه فهم بهتر و دقیقی از تلقیه مصنیه بنامیده این پاک توجه به منشه ها آثار و لغازه شرکت های هرمی منشه شکل چی بوده؟ چه آثار و لوازم اقتصادی برای جامعه داره یا مورد بس سیر پیدایش و تعقل موضوع مستحدث است که ما تو موضوعات عام گفتیم به خاطر تاکیدش تو موضوعات مستحدث هم باز تکرار می‌کنیم ارتباط موضوع است با سایر عناوین مثلا فرض ما گفتیم بابا به بزرگواری که سالا درس خارج رفته موضوع حق و تعریف رو میدیم نمیدونه باید چی کارش کنه؟ خب توی این را حدش میگه آقا این حق و تعریف رو برو به علم حقوق مرحله اول علم حقوق شکر گرفته برو ببینیم آقا حقوق به چی میگه واقعیت خارجیش منشأش آثارش سیر پیدایشش و مرحله شیش ارتباط این حق و رو با اناوین مهم فقهیمون مقایسه کن. ارتباطش با مال چیه؟ آقا حق تحریف مصداق مال هست یا نه؟ مصداق مرک هست یا نه؟ این مرحله باز میتونه کمک بکنه به ما برای موضو شنسه خب، من با توجه به که زمان زیادی ندارم میخوام به شکل فهرستوان موارد بعدی رو عرض بکنم منتون تونه شده اگه پرست شد سوالات دوستان رو هم جوابید موضوع شناسی این مراهده بود که عرض کردیم محمول شناسی هم فهمش خیلی شبیه به موضوع شناسیه اما با این تفاوت که محمولا در مقاحث فقیفه حکم محمول ما حکم شعریه حالا یا حکم شعریه تکلیفی یا وزی و از این حیث اقسامی که برای احکام مطرحه باید بد نظر باشه یعنی مثلا اگر محمول من حجوبه باید من مشخص کنم این حجوب نفسی یا غیبی حجوب تحیلیمیه یا تخلیمیه این اقسام رو در فهم محمول باید داشته باشیم. مثلا فرض بفرمین حالا این به برای فهم مو مسئله بعد از که ما موضوع رو شناختیم محمول رو یه چیزی که به فهم خود مسئله و ترکیب و نسبت موضوع محمول کمک کنه فهم پیشفرز های مسئله است مثلا فرض بفرمید سوال آخر آیا سود بانکی خمس داره؟ پیشفرزش این است که اصلا شخص مالک سود بانکی میشه اگه مالک نشه که ملا نداره بخواد خمس بده این پیشفرز ها فهم بهتری از مسئله به ما میدهید اگر من این پیش فرضها رو قبول نداشته باشم اصلا مسئله شکل نمیگیرد تا بخواییم حالا دنبال جوابش باشیم یا ارتباط مسئله با مسائل مشابه، قایده فرام فرقش و با قایده تجاوز وقتی ما بگیم با میتونه تو مسئله شنسی ما کمک کنه. یا نکته دیگه که نکته آخر هست بود. فهم مسئله تجزیه مسئله و تفکیک فروره گاهی وقتا ما یک مسئله رو ابتدا جلوی ما میذارن بعد که بررسی میکنی، میبینیم که نه این مسئله باید به ریز مسائل دیگه تفکیک بشه تجزیه بشه و به شکل جداگونه بحث بشه چجوری به این نتی میرسیم؟ یادتونه تو بحث تنقیه مزنوعی اقسام و انبابره مصنوعی تعریف تریجو؟ همونجا که اقسام و اسناف رو گفتیم این سوال به ذهن ما میاد که آقا اینا ممکنه احکامشون فرق بکنه عدلشون فرق بکنه پس بیا بر اساس اصناف موضوعی که گفتی اینا را از هم کن جدا جدا برسی کن آقا تلیه مصنوعی تو رحم ای یک مسئله اقسام دیگه یک مسئله دیگه اگر اینها از هم تفکیک بشه جدو میکنه از مقالطه جدو میکنه از خلط مسائل با هم دیگه روند دلیلیابی استدلال و رسیدن به نتیجه رو خیلی واضح ترمی و این کار توی کلمات علمان بسیار زیاد میبینیم ما میاد ازم تفریق کنن مثلا فرد یه سوال شد گرفته آقا متمنقی زکات کیست؟ در مرحله موضوع شناسی و ماهون شناسی شما وقتی مدید اسناف را از تحقیق کردین بین چند چیزی که آقا ما یه متولی عز داریم یه متولی جمع داریم یه متولی حبس داریم یه متولی نقل داریم یه متولی مصرف داریم کدوم یکی از اینا دلایلش فرق میکنه متولی مصرف سرکار یه کسی است متولی عز یه کسی دیگه است مثلا خوب. اینا باید اصلا جدا بشه عدلش فهم میکنه اقوالش فهم میکنه و این رو هم از نابل های صحبتان باستم ارز بکنم که برای که صحیح یک مسئله علاوه بر اینکه شما باید شناخت خوبی نسبت به موضوع محمول و نسبت داشته باشین باید یک شناخت اجمالی هم نسبت به اقوال و عدله داشته باشین <تصفيق> یک شناخت نسبی نسبت به عدله مثلا فرض بفهمین ما سؤال اون متبل بذ می‌بینیم ادله نگاه نقام کنی می‌بینیم آقا فرق میکنه زمانی که حاکم شهر یا ما به مسئول صاحب السلام مطالبه بکنه زکات رو یا نکنه اگه مطالبه بکنه یه ادله‌ای داره مطالبه نکرده باشه یه ادله دیگه داره پس بهتره این دو تا مسئله از هم تفکیک بشه ما دو تا مسئله داریم متولی مصارف زکات این گامی که حاکم شهر مطالبه زکات کنن متولی مسئله زکات اینگاه میده ها که میشن مطالبه نکنن اکثر علمه گفتن اگر مطالبه نکنه مالک است اما اگر مطالبه بکنه دیگه مالک بدایت بر مسئله نداره هر بر مسئله نداره مرحله بعد اگر ما فهم خوبی نسبت به مسئله داشتیم مراهله جمع آوری اقوال و عدله رو باید پیش توجه بکنید خواهش بنده اینه که حالا اینا رو در دقت بفرمایید ثوابد جمعاوری رو اونجا عرض کردیم خدمت دور بعد دستبندی اقوال مهمه اقوال فقط جمعاوری نیست شما ممکنه دوازده تا گل بیدار کنید ولی وقتی دستبندی بکنید چارتبندی کنید اینا نموداری کنید می‌بینید مثلا این دوازده تا گل رو میشه 4 گل بگیرید این ثوابید خاص خودشو داره برای جماوری عدل اقوال و اجلال یک راهکارهایی پیشنهاد شده مرحله بعد ثمره است. و البته مهمترین و سختترین مرحله بحث جماوری و بررسی عدل است اول ما باید ببینیم چجوری رو جمع بکنیم یه سری راهکارهای خاص داره، یه سری راهکارهای کلی. راهکارهای کلی یعنی راهکار برای پیدا کردن هر دلیلی. از دلیل عقلی گرفته و اجماع تا ادله لبزی و سیره. یه سری راهکار هست همه اینا رو بر ما حاصل بکنه. یه سری راهکارا هست برای جواب‌دهی خصوص سیره به درد می‌خوره. اینا رو از هم تلفیق کردیم. راهکارهای کلی اینه. چوا این مسئله رو برید مسائل مشابهش رو نگاه کنید مثلا اگر بحث شما متبدی زکاته متبدی خمس رو نگاه بدهزی متبدی وقت رو نگاه بدهزی ممکن اینا به شدون رو برای شما بیاره مثلا فرض بفهمید مرحوم شیخ ارسالی در بحث مکاسب برای بررسی اخرس اخرست دلیم رقایش چیه؟ طلاق اخرست میگه آقا طلاق اخرس درسته به طریق اولا بگه اخرس درسته چجوری معلوم میشه که رو پیدا کنم از راه اول این آقا به شبیه بقیه معاملات عقود ایقات بریم اونارو نگاه کنیم ببینیم اگه دلیلی اونجا اومده ازش استفاده کنیم تو محل بحث خودمون تو طلاق دلیل داریم میاره از اون تو بحث به استفاده میکنه اگر کل کتاب قیه و رو میگشت هیچ وقت به این دلیل نمیرسه دو دقت در ابوالعصر گزار در جواب مسئله الای بماند بررسی کلمات علما اگر کار قبلا تحقیق شده تتبع شده که میگن آقا پیشینه تحقیق مهمه تتبع در تحقیقات قبل مهمه مثلا بحث مرگ مریم ما کلی مقاله داریم تو زمینه خب بریم اینا رو تتبع کنه ببینیم اینا چه زحمتی کشیدن چه ادله ای رو جمع کردن برای این مسئله خب این راهکارهایی بود اما در مورد ادله خاص اینم بحث های و بررسیه ادله خاص به ترتیب اینجا ما ارائه دادیم آقا دلیل عقلی ترتیبش به این نربه که اون ادله ای که یقین بیشتر میاره از یقین قوی شروع کردیم ادله که اطمینانیه بعد ادله ای که ظن یکی یکی اینجا ذکر کردیم پیشنهادهایی که دادیم که آقا شما برای که دلیل عقلی رو جمع کنید چه راهکارهایی رو باید پیدا کنید چه راهکارهایی باید دارید اگر به یک دلیل عقلی رو نقد و بررسی کنید باید چه گامهایی برداشته بشید بعد از دلیل عقلی که مثلا بالاترین فرض بفهمید قطر رو میاره تحقیق سروده بر... برقی ادله از ضروریات مسلمات اجماع چجوری تحصیل بشه چجوری نقد و بررسی بشه مثلا اولین مرحله در نقد و بررسی اجماعیه که شما ببین آقا این چه نوع است این اجماعی که تحقیق کردید اجماع قطعی اجماع دو قطعی اجماع کشفی اجماع تحلیلی اجماع حساب احتمالات اجماع عادیه هر کدوم از اینها فرق میکنه صحت و صحت تصدیقش فراهم می خب اجماع منقول بحث مد... مثلا شهرت فقه باز واسه شاره دو تا راهکار اصلی برای جامعه داری داره اولویت عقدی و بررسی مجموعه احکام نه رو بررسی شریعت راهکار اصلیش استقرار تتنبوی جامعه نظرات شاره دو عقوه مختلف همینطور سیره عقلا ث ارتکذ او و مهمترین مرحله و شاید سختترین مرحله چند معدل بحث ادله نفسی. ما برای یک مسئله چجوری میتونیم در جمع کنیم و تو مسائل مستحدث حالا مسئله غیر مستدر مادن برای اوولمو زمان زمانش کشیدن جمع کرد دو تا راهکار اصلی داره، یکی جسج لفظی مثلا اگر من میخوام محیط زیست رو بررسی کنم، احتمال میدم که ارز در گذشته به همین معنی محیط سیستما به کار بارده میشده خب ارز رو جستجو کنی در آیات داره یا جستجوی معنایی جستجوی معنایی یعنی اون مواحیط که شما احتمال میدید این بحث اونجا مطرح شده باشه مثلا فرض بفرمایید در بحث نماز شکسته ما باید بساقه کتاب و سایرشیه مواحص نماز رو ببینیم. قسمت نماز مسافر. دیگه کدوم هم با بروش ما احتمال مودیم. دقس قصر در نماز مسافر دمتش بحث شده. روزه برنامه. دیگه. حج. حج می رفتن. سوال نماز برش رو پیش می اومد. بعضی از احادیث نماز مسافر ما تو باب حج اومده. خب این هم باز تطور میخواد روایت خوبی میخواد تسلط فرقی میخواد کار فرقی میطلبه که ما بتونیم خوب تشخیص بدیم که آقا این احتمال داره کجا این مسائل امده باشه حالا این مثال ساده نماز مسافه بود حالا شما محید زیست رو ببینید بحثت بازشوی مثلا ببینید رو کجا ها ما میتونیم احتمال بدیم که این مسائلش و روایتش نمشده باشه خب بعد عدله لفظی بحث حیث صدور داره حیث صدور مختزی حجیت مانه حجیت این ها باید یکی یکی تیه بشه ما برای حجیت چه مراحلی رو تیه می کنیم ممانه حجیت هم که عرض کردیم حالا این هم برای مرحله استظهار از عدله این راه کارهایی که به ذهن رسیده اولین مرحله این شما بخواید از یک درید استظهار مدن صحیح و کاملش رو پیدا کنید. آبا ممکنه این روایت شما نصف بدن داشته باش. آیه یه قرآن کمه ولی ممکنه اختلاف قرآن داشته باش. اختلاف قرآن تو آیات قرآن جدی نیست. معنا معنی ها حالا یک مورد پیدا کردن در حتایت قرآن ها که بیشت. اختلاف دراعت ها بهش توجه بشه اختلاف نسخه های روایات بهش توجه بشه آقا ما یه روایت داریم دو تا نسخه داره یکیش میشه یکیش میگه یکیش میگه لاید مثلا کاملا متنافیه همه با کدوم نسخه درسته سریع تا کافی رو دیدیم تحضیب رو دیدیم نریم تلقش بدقا بدیم این باید همه این مت همه جا دیده بشه تا به نسخه صحیح برسیم بعد نکته دوم در بحث فقهی ما کارمون تفسیر آیه نیست ما کارمون تفسیر حدیث نیست شرح حدیث نمیخواییم بنویسیم که ما میخوایم ببینیم آقا این حدیث میتواند جواب سوال ما رو بدهد یا نه پس در مورد این حدیث فقط میتون مقدماتی که به دردمون میخوره رو بیز کنیم کار نداریم این آیه این به باید چی چیزای دیگه ای میگه مقدمات رو تنظیم رو کنید. آقا من اگه بخوام از این آیه شریفه چنین نتیجهی بگیرم این سه تا مقدمه رو نیاز دارم حالا ببینید از این آیه شریفه یا قرائن دیگه این سه تا مقدمه به دست معمولا این کار نمیشه و آموزش استثار به این شکل منطقی ارائه نمیشه مرحله بعد کشف مفردات جایگاه نهوی تبکیه کنایه ها زربالی مسئله هایی که به هزن دوره باید هست کراین لبی و نفسی برای اثبات یا نفی تنکیتک ممندمان باید نهاز بشه لبازه و عقلی و غرفی هم گایی وقتا به ما کمک کنیم حالا هم یه سری مراحل هم برای کشف معنی مفردات هست که آقایینا رو کرایزه می فرمید. یک بحثی هم در باز قاعده دیگه فقط فارس گفت اینا رو نشونه عزیزان بدم ما سیر بحثمون این بود مساله شناسی رو دیدیم جمع اقوال ثمره نژاد جنبرسی عدله خب خیلی وقته تو بحث جنبرسی عدله به مبانی تعارض می‌رسیم این یه سری مرحله بحث تعارض داره و بحث اصول احکام هر تعارض هم خب سه مرحله اصلی داره جمع اول ترجیح تساوت یا تأخیر یا توقع بر اساس اختلافی که در مبانی ممکنه داشته باشیم و این هم باز راکار ها راکار هایم که برای ترتیبی که برای اصول عملی هست عرض کردیم خدمت رو که عزیزان ها بپردیم من این وقت کمی که داریم چند تا سال از دوستان رو هم ببینم فهمدن که با سلام عزیزم. شاید این احتمال در سیره قدما باشه که صلاح رو بر این دیدن که روش خاصی برای اشتهات نباشم تا به دلیل اینکه تربه بررسده شود استنباط ما محدود نباشد خب خدمت شما عرض بکنم که این احتمالش داده نمیشه به خاطر که عرض کردیم بعضی ازا خود خودما هم فجمله اشاره هایی به این بحث های روشی داشتن زمین اینکه. این روش شناسی رو از بزرگی خارج نمیکنه، بلکه برزیده تر میکنه. این روششناسی شناسی استنباط را محدود نمیکنه، بلکه استنباط نظم نزدمنا ساز میده و منطقی میکنه. همین روش شناسی هم به معنای محدود شدن نیست، این روش شناسی ممکنه اختلاف و نظر باشه توش. نرد و برنسی بشه شما باید نظر خودتون رو نرد شناسی اعمال کنید و این محدودیت ایجاد نمی کنید یه سلامت هم بخنید بعضی از سوالات رو نمرد بکنم جایگار قبل قدسیه اشتحاد الان در کجاست؟ این رسیدن به ملکه اجتحاد بخص نرینه که با استفاده از مراحل بردش های روش شناسی سریتر میده تحقیق شما در فقر بهتر رخ میده شما اگر یکی یکی این مراحل رو دردت در مسئله فقی برید اطمینانتون به اون نتیجهی که رسیدید بیشتره اگه این مراحل ناقص تایی بشه روشون ناقص تایی بشه خب اشتباه هست <متحدث> چرا هر کدوم از اساسی یک جور مراهب رو میگویم خب این هم گاهی وقتا اخترا... ارز کردیم اختلاف مراهبی که گفته میشه اختلاف نزاع لخصیه خیلی نزاع جدی نیست مثلا یک سری رویز مسائل مراهب رو اوبردن تو مراهب اصلی گفتن 20 نه داریم مثلا و شما بالاخره تو هر زمینه آخرشم اختلاف هست شما باید کار بکنید و اون نظر اون رون روندی که بهتره به نظرتون مراحل و هایی که بهتره به نظرتون اونها رو باید انتخاب کنید بر یه صلابات قرد بتم نه بود کردن در مورد مثال این که گفتیم با آلات موسیقی مثلاق قناس این رو ارز کردیم شیخ ترسی راهله بله اکثر علماء قاعد نیستن حالا این رمضی به شرق شناسی نداره یک مثال بود که ارز کردیم آیا میشود باقیم یک موضوع با توجه به عنوانی که ولی لازمش منتبه میشود تغییر کند یا اینکه که صرفا لازم موضوع در شناح آن دارد هر دو هم تو فهم اثر داره مثلا ما گفتیم تشبه به کفار اگر لازمش انگش نما بودن باشه فهم بهتری به ما میده یعنی ما میدونیم اونجا که طرف انگشت نما میشه مثلا تشققه به کفار نیست پس این لازمه فهم بهتری از این موضوع به ما میده گاهی وقتا تو حکم هم اثر داره مثلا این لازمه حرامه مثلا انگش نما شدن حرامه چون لازمه حرام ها میفهمید که همیشه تشبه به وار همراه با حرام است پس اجازه به قمت رو هم نمیدید یعنی هم در فهم اثر می سرره هم در فک میتونونه اثر میز بسیار ببشید یه جدا دلم بیشتر شد تشرار می کنیمیم از همه بزرگان مسئول در قرآن اگر ض و ایراد اون بوز میخوایم انشاءالله همه این تلاش همورد رضای حضرت بوری تعالی و مقدس ما و زمان تا را قرار بگیره به الله اینو ذهن منی که بخوام واردی مساعدی شمیدی نمیشه قبل از اینکه که مداره دیکنم میدونم که آنها ستا برگشتر نیست تو کتابی